در وسط جنگلی از درخت های کاج زنی با دختر و نادختری خودش زندگی می‌کرد. اون از زمان تولد دخترش هرچی رو که خواسته بود در اختیارش گذاشته بود. به همین خاطر دختر به همون اندازه که زشت بود بعد خلق و خشمگین هم بود. از طرف دیگه ناخوهره تمام دوران کودکیش رو صرف کار کردن و مراقبت از خونه برای پدرش کرده بود. پدر خیلی زود بعد از ازدواج دوم فوت کرد. دختر به خاطر مهبانی و پشتکار و زیباییش محبوب همسایه ها بود. با گذشت سالها تفاوت بین دو دختر آشکارتر شد و پیرزن بدتر از قبل با نادختریش رفتار می و همیشه به دنبال بحونهی بود تا اونو کتک بزنه یا از غذا محروم کنه. حالا هر بحونهی هر چقدر احمقانه برای رسیدن به این هدف خوب بود. یک روز بهترین نقشه رو چید و هر دو دختر رو مجبور کرد روی دیواری چاه بشینن و نخ بریسن. اون گفت بهتر حواستون به کارتون باشه. چون نخ هر کس که اول پاره بشه به داخل چه خواهد افتاد البته اون کاملا مراقب بود تا نخی دخترش خوب و محکم باشه در حالی که نخ نادختری شلو غیر قابل استفاده بود همونطور که انتظار می بعد از مدتی کوتاه نخ دختر بیچاره پاره شد پیرزن که از پشت در مشغول تماشای اونها بود شانه های نادختریش را گرفت و اون رو به داخل چاه انداخت و بعد گفت این هم عاقبت تو. اما اون اشتباه می کرد چون ماجرا تازه شروع شده بود. دختر همینطور پایین و پایینتر رفت. انگار اون چاه به اعماق زمین می رسید، اما بالاخره باهاش به زمین رسید و خودش رو در سرزمینی بسیار زیباتر از چمنزارهای تابستانی کوهستان محل سکونتش دید. درختان با نسیم ملایمی تکون می‌خوردند و گل‌های رنگارنگ در بین چمنها به رقص درآمده بودند. اگرچه دختر کاملا تنها بود، اما قلبش از شادی می‌لرزید، چون از زمان مرگ پدرش به بعد هیچ وقت اینطور خوشحال نشده بود. به همین خاطر از میان چمنها گذشت تا اینکه به حسار شکسته ای که به سختی پا بر جامونده بود رسید. دختر به محض رسیدن به اونجا لحظه درنگ کرد و با احتیاط به اطراف خیره شد. اما پیش از اینکه تکونی بخوره، صدایی از حسار بلند شد. دختر کوچولو آزارم نده. من خیلی پیرم، خیلی پیر. دیگه چیزی به پایان عمرم باقی نمونده. دخترک جواب داد، نه، من شما را آزار نمیدم، نترسید. بعد، با دیدن محلی که گل کمتری در اونجا رویده بود، با سبک بالی به هوا پرید موقع راه رفتن دختر حسار گفت خدا پشت و پناهد باشه دختر چمنزا رو ترک کرد و وارد ای شد که از بین دو پرچین پرگل میگذشت درست در مقابل تنوری قرار داشت که اون میتونست از لابلاگ در باز توده های نان سفید رو ببینه تنور فریاد زد هر که میخوای نون بخور اما منو آزار نده دختر کوچولو. دخترک بهش گفت از چیزی نترس چون من هرگز آزاری بهت نمیرسونم. و از مهربانی تنور که اون نونهای زیبای سفید رو بهش داد سپاسگذاری کرد. موقع خوردن آخرین لقمه در تنور رو بست و گفت خدا حافظ. همین که دختر شروع به را رفتن کرد تنور گفت خدا پشت و پناهت باشه. کم کم دخترک تشنه شد و با دیدن گاوی که سطلی از شاخش آبیزون بود به طرف حیوان رفت. گاو صدا زد دختر کوچولو، شیر منو بدوش و هر قدر میخوای از اون بنوش. اما مراقب باش که اون رو روی زمین نریزی. منو هم ازیاد نکن چون من هرگز به کسی آزار نرسوندم. دختر جواب داد منم همینطور از چیزی نترس و بعد بر زمین نشست شیر گاو رو تا جایی که صد تقریبا پر بشه دوشید بعد همه اون رو به جز یک قطره که در تعی ظرف باقی مونده بود نوشید. گاو گفت: حالا هرچی رو که باقی مونده روی سمهای من بریز و سطفر رو دوباره به شاخ من آویزون کن. دختر کاری رو که گاو بهش گفته بود انجام داد. بعد پیشانی حیوان رو بوسید و به ادامه داد. حالا ها از افتادن دختر به داخل چاه میگذشت خورشید در حال غروب کردن بود اون با خودش فکر کرد شب را باید کجا بگذرونم ناگهان پیش روی خودش دروازهای رو دید که قبلا ندیده بود و زن بسیار پیری به اون تکیه داده بود دختر معدبانه گفت شب بخیر پیر زن گفت شب بخیر فرزندم چه خوب میشد اگه همه مثل تو معدب بودن؟ آیا دنبال چیزی می گردی؟ دختر در مقابل گفت دنبال جایی برای خواب می گردم. زن لبخند زد و گفت پس قدری بمون و گیسوان منو شانه بزن و کارهایی رو که بلدی برام بگو. دختر جواب داد با کمال میل مادر. اون شروع به شانه کردن گیسوان پیرزن که بلند و سپید بود کرد. نیم ساعت به این صورت گذشت. پیرزن گفت از اونجایی که خودت رو برای شانه زدن گیسوان من ماهر نمیدونی، به تو جایی رو که میتونی در اون خدمت کنی نشان میدم. محتاط و صبور باش تا همه کارها درست بشه. دختر تشکر کرد و آزم مزرعی در اون نزدیکی ها شد. در اونجا کار دوشیدن گاوها و غربال کردن غلات رو به اون سپردند. صبح روز بعد به محض طلوع خورشید، دختر از خواب بیدار شد و به طویله رفت. در حالی که به نوبت ضربه ملایمی به گاوها میزد گفت: مطمئنم که گرسنه هستید. بعد رفت و از کاهدانی علوفه آورد. هنگامی که گاوها مشغول خوردن بودند، طویله را نظافت کرد و کاه تمیز روی کف زمین ریخت. گاوها به قدری از کارهای اون خوشحال شدند که در زمانی که شیرشون رو میدوشید بی حرکت ایستاده بودن و حقه را که به سایر دختران شیر دوش که خشن و پر بودند زده بودن به اون نزدند. وقتی کار دختر به پایان رسید و داش از چارپایش بلند می شد چشمش به دسته ای از گربه های سیاه و سفید و خالدار افتاد که یک صدا می گفتند ما خیلی تشنه هستیم لطفا کمی شیر به ما بده. دختر گفت پیشی های کچولوگی من. معلومه که به شما شیر میدم اون در حالی که گربه ها پشت سرش می اومدن به محل تهیه لبنیات رفت و به هر کدوم از اونا قدری شیر داد اما قبل از نوشیدن شیر همگی اونها خودشون رو به زانوهای اون مالیدن و به علامت تشکر خرخر کردند. کار بعدی دختر رفتن به انبار و علک کردن غلات بود موقع علک کردن صدای بال و زدن شنید گروهی گنجشک از پنجره وارد انبار شدند اونها فریاد زدند ما گرسنه هستیم کمی دانه به ما بده دختر جواب داد پرنده های کوچولوی بیچاره معلومه که به شما دونه میدم اون مشتی دانه کف زمین پاشید وقتی پرنده ها از خوردن فارغ شدند روی شونههاش نشستند و بالهاشون رو به علامت تشکر به هم زدند زمان سپری شد هیچ گاوی در اون دشت به چاقی گاوهای اون نبود. به خوبی گاوهای اون تیمار نمیشد، و هیچ لبنیاتی به خالصی لبنیات اون نبود. زن مزرعهدار دار اونقدر راضی بود که حقوق بیشتری به دختر میداد و با اون مثل دختر خودش رفتار می سرانجام روزی خانوم خونه از دخترک خواست که به آشپزخونه بیاد. در اونجا پیرزن بهش گفت میدونم که میتونی گاوها رو تیمار و لبنیات تهیه کنی حالا بزار ببینم چه کار دیگری بلد هستی این علک رو بردار و به سر چاه برو و اون رو از آب پر کن و بدون اینکه قطرهای از اون در راه بریزه پیش من بیار دل دخترک با شنیدن این دستور از وحشت لرزید آخه چطور امکان داشت اون چیزی رو که خانمش گفته بود انجام بده با این حال ساکت موند و علک رو برداشت و به سر چه رفت. کنار چاه خم شد و علک رو تا لب اون پر کرد. اما به محض بالا کشیدن اون آب از سوراخها بیرون زد. اون چند بار تلاش کرد اما حتی یک قطره هم درون الک علک باقی نمیمود. چیزی نمونده بود که از شدت ناامیدی برگرده که یک دفعه گروهی از گنجشگاه از آسمان به سمتش پرواز کردند. اونها، چیک, چیک کنن گفتند خاکستر، خاکستر دختر به اونها نگاهی انداخت و گفت خب وزم از اینکه که هست بدتر نمیشه پس به توصیه شما عمل میکنم به آشپزخونه برگشت و علک رو از خاکستر پر کرد بعد یک بار دیگه علک رو به چا انداخت و دید که این بار یک قطره آب هم از اون بیرون نریخت دختر در حالی که وارد اتاقی که خانمش نشسته بود میشد گفت این هم علک خانم زن گفت تو باهوش تر از اون هستی که فکر می کردم یا اینکه کسی که دستی در جادو داره به تو کمک کرده اما دختر خاموش موند و پیرزن هم سؤال دیگری از اون نپرسید روزهای بسیاری سپری شد و دخترک کارهای روزانه خودش را رو انجام میداد اما سرانجام یک روز پیرزن صداش زد و بهش گفت کار دیگری برات در نظر گرفتم. اینجا دو تا کلاف نخ وجود داره. یکی سفید، یکی سیاه. کار تو اینه که اونها رو در رودخونه بشویی تا اینکه نخ سیاه سفید و نخ سفید سیاه بشه. دختر اونها رو به رودخانه برد و چند ساعت شست. اما هرچی این کار رو تکرار کرد، رنگ دو کلاف اصلا تغییری نکرد. اون در حالی که در آستانه نومیدی بود به خودش فکر کرد این از الکم بدتره یک دفعه صدای پروبال زدن بلند شد گنجشکا روی شاخه‌های درختان قان که در کنار ساحل رویده بودند پدیدار شدند اونها فوراً با هم خوندند نخ سیاه به طرف شرق نخ سفید به طرف غرب دختر اشکاشو پاک کرد و دوباره جرأت پیدا کرد کلاف سیاه رو برداشت، رو به شرق ایستاد و اون رو در رودخونه فرو برد و در یک آن رنگ اون به سفیدی برخ شد. بعد به سمت غرب چرخید و کلاف سفید رو در آب نگه داشت. اون هم به سیاهی بال کلاخ شد. نگاهی به گنجشگاه انداخت و لبخند زد و سری تکون داد. اونها هم در پاسخ بالهاشون رو تکون دادند و بلافاصله پر زدند و رفتند. زبان پیرزن با دیدن کلاف نخ بند اومد اما وقتی که عاقبت حالش جا جوامد از دختر پرسید که کدوم جادوگر بهش کمک کرده تا کاری رو که از دست هیچ کس بر نمیاد انجام بده اما دختر جوابی نداد چون میترسید دوستان کوچکش رو به دردسر بندازه خانم خونه چند هفته خودش رو در اتاقش محبوس کرد دخترک طبق معمول به کارهاش میرسید آرزو میکرد که وظایف دشواری که بهش سپرده شده به پایان برسه. اما اشتباه میکرد چون یک روز پیرزن ناگهان به آشپسخونه اومد و بهش گفت یک آزمایش دیگر را باید پشت سر بگذاری. اگه در اون موفق بشی برای همیشه آسوده خواهی بود. اینها دو کلافی هست گشستی. اونها رو بگیر و پارچهی بباف که به لطافت جامعی پادشاه باشه. کارت باید قبل از غروب آفتاب تمام بشه. دختر که در نخریسی ماهر بود با خودش فکر کرد این آسون ترین کاریه که به من سپرده شده. اما وقتی که کارشو شروع کرد دید که نخ دائم گره میخوره و پاره میشه. عاقبت فریاد زد اه هرگز از پس این کار بر نمیام. سرش رو روی چرخ بافندگی گذاشت و گریه کرد. اما در همون موقع در اتاق باز شد و گروهی از گربه ها یکی پس از دیگری وارد اتاق شدن. اونها پرسیدند: دختر زیبا چی شده؟ دختر جواب داد: خانوم من این نخ رو داده که ای از اون ببافم. باید کارم رو تا غروب آفتاب به پایان برسونم و من هنوز حتی اون رو شروع نکردم چون به محض اینکه به نخ دست میزنم پاره میشه. ها گفتند: اگه از این ناراحتی اشکاتو پاک کن ما این کارو برات انجام میدیم. اونها روی چرخ بافندگی پریدند و با چنان سرعت و مهارتی شروع به بافتن کردند که پارچه در مدت زمانی کوتاه آماده شد و لطیفتر از همه جامعه هایی بود که پادشاهان پوشیده بودند دختر به قدری از مشاهده اون خوشحال شد که پیشونی همه گربه ها را بوسید و آنها هم پشت سر هم اتاق را ترک کردند پیرزن بعد از اینکه دو سه بار با دستاش پارچه را لمس کرد و هیچ ناهمواری در اون پیدا نکرد پرسید چه کسی این مهارت رو به تو یاد داده اما دختر فقط لبخند زد و جوابی نداد اون از قبل ارزش سکوت رو آموخته بود بعد از چند هفته پیرزن خدمتکارش رو احضار کرد و بهش گفت که چون یک سال خدمتش به پایان رسیده میتونه به خونش برگرده اما از طرفی چون دختر به خوبی بهش خدمت کرده امید داره که اونجا باقی بمونه اما با شنیدن این حرف دختر سرش رو تکون داد و به آرامی جواب داد خانم من اینجا خوشبخت بودم و از شما به خاطر مهربانی که در حق من کردید سپاسگزارم اما من از ناخاهری و نامادریم جدا شدم و ماگرم دوباره با اونها باشم پیرزن لحظه‌ای بهش نگاه کرد بعد گفت خب هرطور که مایلی اما چون با وفاداری برای من کار کردی پاداشی به تو خواهم داد. حالا به اتاق زیر شیروانی بالای انبار برو. در اونجا سندوق جای بسیاری هست. اون رو که بیشتر میپسندی انتخاب کن. اما مراقب باش که تا رسیدن به جایی که برای قرار دادن اون در نظر گرفتی، اون رو باز نکنی. دختر اتاق رو ترک کرد تا به زیر شیروانی بره و به محض خروج از اتاق گربه ها رو در انتظار خودش دید. اونها طبق رسم خودشون گروهی حرکت می‌کردند و اون رو تا اتاق زیر شیروانی که پر از صندوقچه های بزرگ و کوچیک، ساده و مجلل بود همراهی کردند دختر یکی از صندوقچه ها رو بلند کرد و به اون نگاهی انداخت بعد اون رو زمین گذاشت تا صندوقچه دیگری رو که زیباتر بود بررسی کنه. باید کدوم رو انتخاب می‌کرد؟ زرد یا آبی؟ قرمز یا سفید؟ طلایی یا نقره‌ای؟ اون مدت زمان طولانی درنگ کرد. اول سراغ یکی، بعد سراغ دیگری می رفت. تا اینکه صدای گربه ها رو شنید که فریاد می صندوقچه سیاه را بردار. صندوقچه سیاه را بردار. این حرف باعث شد اطراف خودش رو نگاه کنه. اون صندوقچه سیاهی ندیده بود. اما با ادامه یافتن فریاد گربه ها چند گوش از اتاق را که قبلا نگاه نکرده بود بررسی کرد. سرانجام جعبه کوچک سیاهی را پیدا کرد که اونقدر کوچک و تیره رنگ بود که به راحتی از نظر اون پنهان میموند. دختر در حالی که صندوقچه رو به خونه برده بود گفت خانون من این صندوقچه را از همه بیشتر دوست دارم. پیرزن لبخندی زد و سری تکون داد و به دختر گفت که به راه خودش بره. به این ترتیب دختر بعد از خداحافظی با گاوها، گربهها گربه ها و گنجشک ها که همگی در موقع خداحافظی با اون گریه می کردند از اونجا رفت. رفت و رفت و رفت تا به چمنزار پلگوری رسید. ناگهان در اونجا اتفاقی روی داد. اون هرگز نفهمید که چی شد اما خودش رو در حالی که روی دیوار چای حیات نامادریش نشسته بود پیدا کرد. بعد از جا بلند شد و وارد خونه شد. نامادری و دخترش چنان به اون نگاه میکردند که گویی تبدیل به سنگ شدن. اما عاقبت نامادری نفذ زنان گفت پس تو هنوز زنده ای؟ خب، بخت با من یار نبود. این یک ساله که گذشت کجا بودی؟ دختر گفت که در جهان زیرین خدمت میکرده و علاوه بر حقوقش صندوقچه کوچکی رو هم با خودش آورده که میخواد اون رو در اتاقش بگذاره. زن با خشم خطاب به دختر فریاد زد پول رو به من بده و این جعبه کوچک زش رو داخل چای فاضلاب بیرون از خونه بنداز. دختر که از خشم نامادری وحشت زده شده بود در حالی که صندوقچه با ارزش خودش را به می فشرد شتابان خارج شد. چای فاضلاب خیلی کسیف بود چون از زمان افتادن دختر در چا کسی بهش نزدیک نشده بود. اما دختر اونجا رو جارو و تمیز کرد تا اینکه همه چیز دوباره تمیز شد و بعد صندوقچه کوچک رو روی تاقچه کوچکی که در گوشه اونجا بود گذاشت بعد با خودش گفت حالا میتونم اونو باز کنم با کلیدی که به دستی صندوقچه آبیسون بود قفل رو باز و درش رو بلند کرد اما با این کار شروع به عقب رفتن کرد چون به خاطر نوری که از داخل جعبه میتابید نمیتونست چشم‌هاش رو باز نگه داره هیچ کس حتی حدس نمیزد که داخل اون جبه یک سیاه اون همه اشیای زیبا باشه. انگشتر، تاج، کمربند، گردنبند که همه از سنگهای قیمتی بودن و چنان درخششی داشتند که نه تنها نامادری و دخترش بلکه همه مردم اون اطراف دوان دوان برای دیدن اون اومدن چون تصور میگردن خونه آتیش گرفته. مشخص بود که زن از شدت هرس و حسرت مریض شده و اگه از خشم همسایه ها که به همون اندازه که از اون بیزار بودند نادخترش رو دوست داشتن نمی ترسید حتما همه جواهرات رو برای خودش بر اما اون اگه نمی تونه و گنج داخل اون رو بدزده دست کم قادر بود که یکی مثل اون رو و حتی از اون بهتر رو به دست بیاره. به همین خاطر به دخترش گفت که لبه چاه بنشینه و اون رو دقیقا همونطور که دختر دیگر رو پرتاب کرده بود به داخل آب انداخت درست مثل قبل چمنزار پرگل اون پایین پدیدار شد دختر درست همون مسیری رو که ناخواهریش ته کرده بود زیر پا گذاشت و همون چیزهایی رو که اون دیده بود دید اما این شباحت ها همونجا به پایان رسید وقتی که حسار از دختر خواست که آسیبی بهش نرسونه، دختر با وقاحت خندید و چند تا از چوبها رو در تا بتونه آسونتر از روی اون عبور کنه. وقتی که تنور به اون نون داد، دختر نونها رو روی زمین پخش و زیر پا له کرد. وقتی که گاف رو دوشید تا جایی که میخواست شیر نوشید و بقیه اون رو روی چمن ریخت. بعد سطر رو با لگت خورد کرد. و هرگه صدای اون رو نشنید که گفت برای هیچ و پوج این بلا رو سر من آوردی. نزدیک شب به جایی رسید که پیرزن به تیرک دروازه تکه داده بود. اما دختر بدون اون که کلمه بر زبان بیاره از کنارش گذشت، پیرزن پرسید آیا در کشور شما عدب و تربیت یادتون نمیدن؟ دختر جواب داد نمیتونم به استماح حرف بزنم. عجله دارم. داره دیر میشه و به دنبال جا می گردم. پیرزن گفت بمون و کمی گیسوان منو شانه بزن و من به تو کمک خواهم کرد تا جایی پیدا کنی. دختر گفت واقعا که موهایی تو رو شونه کنم کار بهتری دارم که باید انجام بدم. بعد در رو روی پیرزن کوبید و رفت و هرگز این کلمات رو نشنید. برای هیچ و پوچ این بلا رو سر من آوردی. کمی بعد دختر به مزرعه رسید و مثل ناخوهرش کار مراقبت از گاوها و غربار کردن غلات به اون سپرده شد. اما فقط مواقعی که کسی اونو تماشا میکرد کارش را انجام میداد و بیشتر وقتها طویل کسیف بود و غذای کافی به گاوها نمیداد و اونها رو کتک میزد. طوری که گاوها به صد لگت میگویدند و سعی میکردن به اون شاخ بزنند. همه میگفتن که تا به حال گاوهایی به این لاغری و یا شیری به این کم قوتی ندیدند. اون گربه ها رو دنبال میکرد و با اونها بدرفتاری میکرد. طوری که اونها دیگه حال دنبال کردن موشها که در اون زمان همه جا پر شده بودند رو نداشتند. وقتی که گنجشگاه اومدن و ازش خواهش کردند، قدری دونه به اونها بده با رفتار بهتری نسبت به گاوها و گربه ها رو برو نشدند. چون دختر کفشهاش رو به سمت اونها پرتاب کرد. تا جایی که از ترس به جنگل فرار کردند و در بین درختا پناه گرفتند. ماها به همین شکل سپری شد تا اینکه یک روز خانم خونه دختر رو به نزد خودش فراخوند. خانم گفت: تا حالا کارهایی رو که به تو سپردم به طور ناشیانه انجام دادی. با این حال یک فرصت دیگه به تو خواهم داد. چون اگر چه نمیتونی از گابها مراقبت کنی یا غلات رو غربال کنی، اما شاید کارهایی باشه که بتونی بهتر انجام بدی. بنابراین اون الک رو به کنار چاه ببر و اون رو با آب پر کن و بدون اینکه یک قطر آب بریزه اون رو برگردون. دختر مثل خواهرش الک رو برداشت و به کنار چاه برد. اما هیچ پرنده‌ای برای کمک بهش نیومد و پس از دو سه بار فرو بردن اون در آب، الک رو خالی برگردوند. پیرزن با عصبانیت گفت: همین فکر رو میکردم. کسی که در یک کار بی باشه در کارهای دیگه هم همینطوره. شاید خانم فکر کرده بود که دختر درسی گرفته اما چون این تصوری کاملا غلط بود چون کارها بهتر از قبل انجام نمیشد. کمی بعد دختر رو دوباره صدا زد و کلاف سیاه و سفید رو بهش داد تا در رودخونه بشوره. اما هیچ کس نبود که راز تبدیل شدن رنگ سیاه به سفید و سفید به سیاه رو به اون بگه به همین خاطر اونها را همونطور که برده بود برگردوند این بار پیرزن فقط با خشم بهش نگاه کرد اما دختر اونقدر از خود متشکر بود که توجهی به تصورات دیگران در مورد خودش نداشت بعد از چند هفته نوبت به آزمایش سوم رسید و کلاف ها برای رسیدن به اون سپرده شد درست همونطور که در مورد ناخوهریش قبل از اون عمل شده بود. اما گروه گربه نیومدند تا پارچه ظریف رو ببافند. موقع گروه آفتاب اون فقط یک کلاف کثیف و در همبر هم یشمی برای خانمش آورد. پیرزن گفت ظاهرا هیچ کاری تو دنیا نیست که تو از اهدش بر بیای. و اون رو به حال خودش رها کرد. کمی بعد سال به پایان رسید. دختر نزد خانمش رفت تا بهش بگی که دلش میخواد به خونه برگرده پیرزن گفت اصلا تمایلی ندارم که تو رو اینجا نگه دارم چون هیچ کدوم از کارهایی رو که بهت سپردم به درستی انجام ندادی با این حال پاداشی به تو خواهم داد به اتاق زیر شیروانی برو و یکی از صندوقچه رو که اونجا وجود داره برای خودت انتخاب کن اما مراقب باش تا به جایی که دلت میخواد صندوق رو قرار بدی نرسیدی اونو باز نکنی. این همون چیزی بود که دختر امیده داشت و به قدری شاد بود که حتی بدون سپاسگذاری از پیرزن با سرعت به اتاق زیر شیربانی رفت. سندوقچه آبی و قرمز سبز و زرد نقری و طلایی اونجا قرار داشتند و در گوشه از اتاق سندوقچه کوچک سیاهی درست شبیه به اون که ناخوهرش به خونه آورده بود قرار داشت. اون با خودش گفت اگر اون همه جواهر در اون صندوقچه سیاه کوچک بوده، حتما دو برابر اون مقدار در این صندوق بزرگ وجود داره. بعد صندوقچه رو قاپید و حتی بدون خداحافظی با خانمش راه خونه رو در پیش گرفت. به محض ورود به کلبه، در حالی که صندوقچه رو با دو دستش گرفته بود فریاد زد. ببین مادر، ببین چی آوردم؟ پیرزن با شادمانی گفت، آه، مال تو کاملا با اون جعبه سیاه متفاوته. اما دختر اونقدر سرگرم یافتن محلی برای قرار دادن صندوقچه بود که توجهی به مادرش نکرد. اون در حالی که لحظه رو اینجا و لحظه بعد جایی دیگه میگذاش گفت اینجا جاش خوبه. نه نه اینجا بهتره. اما هرچی باشه خوب نیست. اونو تو آشپزخونه بذاریم. بیا صندوقچه رو در اتاق مهمان بذاریم. به این ترتیب مادر و دختر مقرورانه اون رو تا بالای پلا حمل کردند و روی تاقچهی بالای بخاری گذاشتن. بعد کلید رو از دست جدا کردند و در جعبه رو باز کردند مثل قبل به محض باز شدن جعبه نور درخشانی مستقیما تابید اما این نور ناشی از درخشش جواهرات نبود بلکه شئلههای سوزانی بود که همه دیوارها رو فرا گرفت و کلبه و تمام اون چیزی رو که درونش بود و همینطور مادر و دختر رو سوزند. مثل زمانی که نادختری به خونه اومده بود، همسایه ها شتابان اومدند تا ببینن چه اتفاقی افتاده. اما خیلی دیر رسیدند، فقط مرقدانی مونده بود و نادختری با وجود ثروتش تا آخر عمر با شادمانی در همون جا زندگی کرد. کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی نشانی وبلاگ ما m e h r a n d مهران دوستی